افسونه افسانه هر افسانه در دل خودش بخشی از فرهنگ و آیین‌های یک سرزمین رو به یادگار داره فرهنگی که در دل حوادث و گفتگوها و پیام‌های اون افسانه نهفته است شاید به همین دلیله که افسانه‌های ایرانی اغلب سرشار از عشق و مهربانی و وفاداری‌اند افسانه‌ای رو که میخوام براتون بگم ملخ تلایی نام داره افسانه ای ایرانی با حال و هوای ایرانی روزی روزگاری در سرزمینمون ایران مرد با ایمان و خوش اخلاقی زندگی میکرد که خیلی دوست داشت به دیگران کمک کنه اهالی آبادی به اون مرد عمو میگفتند. خیر و خوبی امو به همه می رسید و همیشه در کمک کردن به مردم پیشتاز و جلودار بود میگم گم هشتی؟ جونم از اما قربون خبر نداری نه نوست روزیه که سر زنی ندیدن خب حتما اتفاقی براش افتاده که نتونسته بیاد سر زمیناشا حتما همینطوره اما قربون آدمی نبود که زمیناشو همینجوری راه کنه و بهشون سر نزنه بله منم منم من محصولشم اگه تا یکی دو روز دیگه بهشون آب نرزا محصولش خشک میشه این همه زحمتی هم که امسال برای این محصول کشمه همهش بباد میده اه اه اه اه حالا امون قربون هیچ پسراش نباید بیان به این زمین ها سری بزنن؟ <تصفيق> نباید بیان زمیناشونو آبیاری کنن؟ خب حتما اون هم کاری دارن که نتونستن بیان سر زمین ای امو اگه بخوای برای کار نکردن بهونه بیاری بهونه زیاده هر کی میتونه تا تا آسمون بهونه رو هم بچینه و بره بالا ولی کار کردن و کشاورزی کردن که با بهونه اووردن جلو نمیره میره؟ م. روسته خب اما منو تو اما قربون و پسراشون میشراسیم اونا هل بحون دراشی و از زیر کار در رفتن نبودن تم چیزی شده اتفاقی که این دو سه روزه از هیچ کدومشون خبری نیست والا من یکی تو کار خودم مونده از صبح که میام سر این زمین همینجوری دست و دلم به کاره تا شب که برمیگردم دیگه مجالی برای سرک کشیدن تو زندگی اینو اون ندارم خب میدونی موضوع سرک کشیدن نیست مشتی موضوع اینه که اگه خدای نکرده برای امون قربون و احلا ایالش اتفاقی افتاده کمکشون کنیم تو <تصفيق> هم که سر درد میکنه برای کمک کردن به اینو اون به کار تو زندگیتو بکن همون همون غرمون ست تا پسر داره یکی قوی و قبراختر از اون یکی مشتی <تصفيق> زندگی من اول کمک کردم به این اونه کارم هم همیشون دعای خیره همین جماعت میدونم همون میدونم اینا رو به یکی بگو که تو رو نشناسه خوب من میرم پایین زمین آب بدم. اگه کاری داشتی خبرم کن باشه برو خیلی بیش باشه امو اون روز با اینکه سرگرم کشاورزی و آبیاری زمین بود مدام به امو قربان فکر می کرد و اینکه چرا چند روز سر زمین نیمده و خبری هم ازش نیست اون روز قبل از اینکه به خونه بره رفت منزل عمو قربون تا سراغی از اون و خونوادش بگیره ای بابا انگاریش که خونه نیست بذاره یه امتحان کنم نخیر انگار واقعا کسی خونه نیست نکنه بلاشون اتفاقی افتاده خدایا خودت درم کن سلام عمو، خوبی؟ به به سلام مشی. <تصفيق> دل طاقت نیومون نه؟ نه, <تصفيق> نه. از سر زمین گراست اومدم ببینم چه بلای سر امو قربون و خونوادش بگمونم اصلا خونه نیستن هر در زدم که کی دروانای در همین نیم ساعت پیش از احل محل شنیدم که امو قربون و پسراش مریض شدن ای بابا همشون؟ آره میگن آبله افتاده به جونشون لا اله الا لا گفتن سه چهار روزه که مشتی و علو عیالش روونه شر شدن تا برن پیش یه طبیب حازق ای بابا پس بگو چند روزه به زمیناشون سر نزد برای همینه یمون کنم تا یکی دو روز دیگه درمون بشن و برگردن انشالله آبادی وقتی برگشتن پسراش یه روزه میتونن زمینا رو آبیاری کنن خیالت راحت میگم همون؟ بیا بیا با هم بریم خونه ما ممنون خیلی خستم حقیقتش میرم خونه با اجازت خیلی پیش به خدا به همراهت. امو که همیشه برای کمک کردن به مردم یک تاز بود وقتی خبر مریضی امو قربون و خانوادش رو شنید تصمیم گرفت زمینای امو قربون رو آبیاری کنید تو نیکی میکنو داشت که ایزد در بیا و باوند با سلام امون خدا قبط سلام باشی خدا قبط خسته نباشی درمونده نباشی میبینم دل طاقت نیومرد و اومدی رو زمین عمو قربون آره خب دیشب راستش خیلی فکر کردم دیدم ممکن امون قربونو باید خب کلوز دیتر خوب بشن وقت محصولم خب به باد میره گفتم امروز پیش از این که برم سر زمین خودم بیام زمین های ام قربون آب بدم اگه همین امروزم هم از شهر اومدن خب چه بهتر استراحت میکنن فردام میرم سر زمین ها شد. یعنی امروز نمیخوای بری سر زمین خوده کرا ولی بعد از این که خیالم از آبیاری زمین ام و راحت شد میرم سر زمین خودم خدا خیره بده باشه پس من با اجازتون میرم سر زمین ها. زور بیا با هم نهار بخوریم امون نهار آبگوش دارم <متش> زنده باشی باشه باشه بیای بیایم میاب منتظرتم میا. پس با اجازه خلافیز خلافیز امو زمینای قربون و آبیاری کرد و با خیال راحت رفت سراغ زمینای خودش اون حتی به مشتی در شخم زدن زمینش کمک کرد و آخر سرم سراغ زمین خودش رفت و شبم خسته و کوفته به خونه برگشت ای بابا چرا غذا ما؟ گرستن نیستم تو که چیزی نخوردی بخچه غذایی رو که برات گذاشتم تا سر زور بخوری دست نخورده برگردوندی چرا گرستن نیستی؟ خب شاید به خاطر این که امروز خیلی کار کردم مهم. اتفاقا زور مجری گفت آبگشتن هم ازم خواست برم مهم. پیشش که آبگشت بخوریم با هم ولی فرصت نکردم پیشه هم مجری برم فقط کمکش کردم که زمینشو شخف زدم اینه ا خیلی کار کردم ایسا این خستم چرا؟ مگه چی کار کردی؟ چی کار که؟ والا چند روزی بود دیدم اما غربون نمیاد زر زمیناش نگران شدم دیروز پیش از اینکه بیام خونه اه. یه سر رفتم در خونهش ببینم چی شده که نه خودش نه پسراش این چند روزی نیومد از زمین ایچی دیگه ارچی در زدم گذیم در وانه گرد اینکه که مشتی از را رسید گفت و از احالی محل شنیده که آبله افتاده به جون همون قربون و حل آه. ایالش خب؟ بیداد, بیداد گفت که آره همشون رفتن شهر پیش طبیب من شنیده بودم که چند نفر از اهالی آبادی آبله گرفتن آه. ولی نمیدونستم همون قربون و آیالش هم مریض شدن خدا شفا بده نایامین خب حالا آبله ام و و اهل و ایالش چه دخلی به خستگی تو داره مرد خب بختش اینه که امروز با خودم عد کردم اول زمینای ام و آبیاری آب یاری کنم بعد برم شراق زمینهای خودم اون به محصول تشنه بودن هر که به زمین آب میدادم دادم اصلا تشنه درم می شودن. اما حالا خیالم راحتی که اگه قربون دو روزم دیتر بیاد زمیناش تشنه نیستن محصولش خوب خوش خدا خیرت بده بی نیست که اهل آبادی اسم امون خیرخا حروت گذاشتن چی میگیزن راست میگن امروز از اهل محل شنیدم که همه تو رو امون خاص صدا میکنن هر وقت میخوان نشون تو به هم بدن میگن امون خیرخا همونی که همیشه به همه کمک میکنه همونی که خیر همه رو میخواد به خاطر این همه خوبی منتی رو عشقی نداره والا به خدا که تو زندگی لقبمون خیرخواه شد ها اینم از لطف خداستن که میونه این جماعت شدیم مالا خیرخواه بله دوستان غلاسن که عمو خیرخواه قصه ما همیشه و همیشه دیگران رو به خودش ترجیح میداد و تا جایی که از دستش برمیومد در رفع مشکلات مردم پیش قدم بود تا اینکه یه روز وقتی داشت از سر زمیناش برمیگشت یکی از اهالی محله را دید به به سلام ابراهیم سلام خیرخواه خوبی <تصفيق> خوبم خدا رو شکر میگم هر خوبن چه خوبی همون خوبی به کارو نه میمده خوشگینی نکنه ایپری الحمدلله که 4 ستون بدن سالم چی از این بهتر وقتی 4 ستون بدن سالم باشه ولی تو دستت چی نباشه چه فایده وقتی 4 ستون بدن سالم باشه ولی شب ناتونی یه لقمه نون سر صبحی سر بچت بذاری چه فایده داره عمو حالو سالم وقتی خوبه که پر باشه آلم مگه چی شده ابراهیم تو که تا روز پیش تو حجره سفتر کار می‌کردی هم بودی آره ولی همون دو روز پیش سفترو ازم خواسته یه شاگرد طرف سر به جهمنو برد تو اوشاش که بعد دستش باشه ای بابا خب مگه تو طرفز نبودی بودا ولی یکی دو روز به خاطر مریضی بچه‌م دیر رفتم اوشره سفترم غذب کرد و گفتی که نمیخواد برم. ای بابا الان دو روز کیپتی کار پی خب حالا نه راحت نباش بابا تو جوانی و سخونداری میتونی کار کنی دنبال کار بگرد حتما این کار خوبم بیدا میکنه دو روزه همین که از صبح شهش آغاز کردم رفتم سراغ اینو هون سراغ که هجره دارن حتی با مشی هم حفظدم که اگه بخواد برم سر زمیناش کار کنن خب ایش کارگر کارگرد خب ناراحت نباشه نه آبا خدا بزرگه در بزرگی خدای شکی نیستم دستم خالیه شهرمنده زن بچه من رو ندارم اون دست خالی برم خوره میدونم ماله حق داری برای مرد یه چی بدتر از این نیست که شهرمنده زن چش باشه نه خدا شاهده آقا برایم که بیا همینقدر پول هم را می. نه اینا رو بگیر برای شام زنو بچت یه چیزی بخر ببر بزار این چه کاری هم خیلخانه میخوام نه بابا تعرف نکنی که تو هم مثل پسر خودمی خدا شاهد که بیشتر داشتم تریخ ها کردم خدا بزرگی کمت نکنم خدا به صفرات برکت ده خدا به تو زندگیت هم برکت بده نگران نباش اینشالله من روز فردا یه کارو خوب پیدا میکنی یا میشین نوناور خونه خودت <تصفح> اینشالله میگم اگه چند روز گشتی و حالا کاری پیدا نکردی اصلا بگه پیش خودم سر زمینام کار کن منم که دیگه مثل قبلی توان کار کردن ندارم اگه ریم خدا خیرت بدم خدا خیرت بدم خیر خواه اما خیرخواه بعد از کمی خوشوبش با ابراهیم به طرف خونه به راه افتاد اما هنوز چند قدمی از ابراهیم دور نشده بود که چشمش به هیدر افتاد که کنار یه دیوار افتاده بود خدا ای بابا ای ای ای این که هیدره هیدر هیدر با چه بلایی سرت اومده؟ با تو میگه؟ هم سلام همون خیر خواه سلام چی شده ها؟ چرا اینجا افتادی؟ نمیدم چی شدی دفعه چشم سیاهی رفت یه ایچی اه... غذا خوردی؟ نه دو روزه ایچی نخورد ای بابا برای چی آخه؟ چی بگم همون خیر چی خب یعنی چی معلومه دیگه دو روز غذا نخوردی همچین یعنی بلایی سرت میاد؟ ببینم میتونی حالا پاشی یا نه پاشتم گجا ای بابا اینجا که نمیشه بشینی تمام تنها بدنگتون یک آکون خاکی شده باچو بلا چو بریم زیر اون سای اون درخ پاشو باب جو ندارنم بسید بسید دوری گردانه من کمک که کنم بیار بگیر بگیر باید باشو باشو سکون خاکی باشی من بابا میخوام ببرم چه قدم اومد، هر خوب زیون سایب درخت پاشو بریم درم میام، درم میام امو گیش خوا رو بلند کرد و برد زیر سایه ی درخت. بعدم باغچه رو باز کرد و جلوی حیدر گذاشت تا اون یه دل سیر غذا بخوره. اما حیدر دست به غذا نزد. بخور دیگه حیدر چی شده مگه گرسنه نبودی؟ چرا غذا نمیخوری؟ بخور. گرسنه نبودم. عله دیگه نیستم. یعنی چی؟ چی شد که این دو قدم یه سیر شدی؟ داری تعارف میکنیم امون تعرف به من بگو چی تو دلت ای ببین ما همساییم اهل آبادی هستیم سالهای سالم هست که هم دیگر رو میشناسیم. سر سفره هم, هم بزرگ شدیم بگو چی تو دلتی که صدات پر از بغض و چشاتم خیزا دلم میرفتم و خیر خ. ای بابا خدا نکنی از من بختت داله منی مده که این چیز و فقیر باشم همون اونی که دلش خالی از مهربونی و محبته فقیره در. نه تو که آواز مهربونی تو این آبادی به بوشه همم هم رسیده کدوم مهربونی؟ آدستت خالیه مهربونی و این چیزا به کار نمیاد. میاد درد میاد یه وقتهایی با دو تا جمله از سر مهر میتونی هزار تا کار بکنی حالا به چراخت ها نمیخوری اگه اگه بگم ملامتم نمی کنیم خدا نکنه ملامتت کنم خداونده خدا من اهل کارم ولی ولی تنی روزی هم این هر رو نزنه دستم خالیه بچه گشتن هیالم گفت اگه امروز با دست قالی برم خونه میذاره میره خونه باباش بیداده بیداد. گفتم من که دو روز قوت نخوردم غذا رو ببرم بذارم سر شفره بلکه اهل و عیالم سیر به خدا همه دارایم همین یکی میدونم امو میدونم کیه تو این آبادی تو رو نشناسه من که کاری نمیکنم. فقط همون چیزی که دارم با بقیه قسمت میکنم همینم خیلی همون میگم همون ها. میشه میشه ها. میشه چی؟ خب حد بزن این قضا فقط میتونه که بعدش شکم بزن و بچه رو سیر کنه اگه میشه بم... یه خورده پول بده وقتی کار کردم و پول گرفتم میرم قرضم و پس میدم هیدر جان با باور کن من پولی ندارم پیش از اینکه تو رو ببینم بنده خدایی رو دیدم که دستش تنگ بود هر چی داشتم دادم به اون ببزر بز رو بگردم من که میدونم ندارم نیست هی جان هیچ پولی تو جیبام نیست من از هیچی خبر نداشته باشم از حال روز جیبام که خبر دارم ببخش من دنوالا او خیرها از اینکه نتونست به هیدر کمک کنه خیلی ناراحت بود. مدام تو ذهنش دنبال راهی می گشت تا شاید بتونه یه جورایی دست هیدر رو بگیره. از ته دل خدا رو صدا زد. به خدا توکل کرد و از خدا کمک خواست. انگار روی نگاه کردن به چشمای هیدر رو نداشت. در همین موقع یه ملخ رو دسته اموخیرخا نشست ملخ زرد رنگ بود و در قروب آفتاب مثل طلا می درخشید اموخیرخا با حسرت نگاهی به ملخ انداخت ای چه ملخ بزرگ و قشنگی چه رنگ زردی چقدر شبیه تلاست چی شو اگه تو تلا بودی و ای در را ای خدا یعنی میشه یعنی میشه این ملخ طلا بشه و منو شرمنده ای در نکنی و ای درم شرمنده زن و خدا تو قادر و تعالی این که این ملخ تلا بشه برای تو کار بزرگیست کفیو فقط اراده کنی کافیه بخوای منم که نیتم خیلی فقط میخوام کار در راوی افتو دست خالی به نره ای خدا ای. چی شده امون خیر خواه داری با کیه حرف میزنی؟ نشه یعنی امکانش ها خیر خواه ها ما با منیم بله با تو هم داری با کیه میزنی؟ با با ایچکی نه نه چرا چلا, چلا. داشتم با خودم حرف میزدم اون چیه تو دستت تو دست همه آه... آه این ملخه <تصفح> ملخ؟ خبه اندازش بره نه نه ایدر نه نیکا اینگه مالخ معمولی نیست یعنی چی؟ نیکا کن ببین چقدر بزرگه نیکا کن چقدر زد رنگه شبید تلا نیست خیلی قشنگجا برنگی هم داره نیکم خدای چی میشود اگه این ملخ تلا ای چی کارش آه اگه طلا بود چیکارش می‌کردیم اگه طلا بود خب می‌دادمش به تو بتونی برای خودت یک کسب و کار رو بندازی اینجوری دیگه شرمنده زن و بچه‌ام نمی‌شدم راست می‌گم خیر خوا واقعا اگه این ملخ طلا بود میدادینش به من خب معلومه که راست می‌گم من ای وای هیدا هیدا چی شدم خیر خوا نگاه کن ببین ای ای این ملخ ملخ واقعا تلا شد ای ای تلا شده ملخ تلا شده, ای ای ای ملخ ملخ تلا شده خدا هزت ممنون حال دوستان اون ملخ زر تو دستای امو خیرخوا تبدیل به یه ملخ طلایی شد و امو خیرخوا هم همونطور که به هیدر قول داده بود ملخو به اون داد هیدر با خوشحالی به خونه رفت و موضوع رو با همسرش در میون گذاشت می‌بینی زن می‌بینی خدا چه بخت و اقبالی نصیبمون کرده من هی در باورم نمیشه باورم چرا نمیشه. باورت نمیشه اینی که الان تو دست تو یه ملخ طلاییه طلایی تو <تصفيق> می‌خوای با این ملخ چیکار کنی معلومه بعدم میرم شهر میرم یه زرگری خوب پیدا میکنم این ملخو میفروشم بعدم برمیگردم ده با پول همین ملخ یه کسب و کار خوب برام میذارم میزنم دیگه بشه یه کسب و کار را بندوزی زندگیمون از این رو به اون رو میشه چرا میگی اگه معلومه که میتونم با پولش یه زمین بخرام یه مقدار دیگه اشام میدم چندتا تا گاو گوسفه هم میخرم مرغ مرغ خودم سم بزوج چند تا مرغ و میخرم که تو خونه سالاد گرم باشه میتونی یه خونه بزرگتر هم بخری هیيدا یه خونه قده خونه ی بلغی سینا بذار این بفروشم اون وقت میبینه با پولش چه کسب و کارهایی که را حالا میبینی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ای اون روز هیدر به شهر رفت و ملخ طلایی رو فروخت و به آبادی برگشت بعدم چند هکتار زمین خرید و بعدم رفت سراغ یه دامدار و تعدادی گاو و گوسفند خرید و با خودش به خونه برد آدیگه فقیر نیستیم دیگه. دیگه دستم خالی نیست. دیگه اینو اون ملامتم نمیکنم. به لطف خدا زندگیمون سبزامون کرد. ای ببینم زمین زمین بخری معلومه که خریدم <تصفيق> <تصفيق> به معنی که رسیدم آبادی رفتم سراغ عمو قربان گفت چون آبله‌ گرفته نمیتونه مسئله قبر زمینش زمیناش کچاو ورزیه نصف رو به قیمت خوب خریدم تا هم خدا ازم بشه هم عمو قربان کردی هیدر خوب کاری کردی عمو قربان مرد آبرو داری بعدم رفتم سراغ اسماعیل شنیده بودم هنوز تو کار پروار کردن گاو گوسفنده یه خود بهش پول دادم و این سه تا گاو و 10 تا گوسفند ازش خریدم که بتونم پروارش خوب کاری کردی هیدر بباز مرغ خوخره منو اجل ای مادر کلی عجله نکن این خراب فعلا اینا رو آوردم خونه تا یه خدا آب با و گاز بشونم بعد از میرم سراغ مشلایی ازش 10 تا مرغ و خروسم میخرم اینا میتونی برای خودت یه کز و گاری را بندازی <تصفيق> ملوه که میتونم من از صفت داشم توی تنها بچه ها که تا چشمان میکنن میرن سناغ کار خودشون میخوام مرغ و رو بزرگ کنم مرگ ها تخ بذارن جوجه بشن اونام بزرگ بشن اونام تخ بذارن منم هم تو همین خونه برای خودم با فروش اون تخ و مرگ ها یه کاسبی را میدازم آفرین این فکر خوبی از <تصفيق> <تصفيق> زو میرم از محس سلیمان برات مرغ و خروش تا خوبه دیگه. داد تو الهالهاله آله خوبه دستت داد نکنه ای دستت داد نکنه در پیش مش سلیمون رفت و از مش سلیمون ده تا مرغ و خروس خرید و به زنش داد. از همون روز به بعد تلاش هیدر و زنش برای کسب درآمد شروع شد. اونا مدام کار کردن و کار کردند تا اینکه یه روز به خودشون اومدن و متوجه شدن صاحب مال و اموال زیادی شدن. زم بری آه... چه باغ بزرگ و باش خریده بهتر از این نمیشه باید میدید می وقتی بلغیس فهمید قراره این باغ بخریم چه حال و روزی داشت رومی نداشت حالا به بلغیس بگی ما قصد داریم این باغ بخریم باید بهش می‌گفتم تا دیگه پیش من این همه استفاده مال و منالش نیاد <تصفح> <تصفح> یه عمر بلغز بر من استفاده مال اممالش اود منم من یه بار استفاده بیام که این همه مالاعمال داریم؟ <تصفح> <تصفيق> مال انوال لطف خداست <تصفيق> <تصفيق> خدا خواست به ما این و رو داده آلی. اگر هم نخواد ما صاحب این مال و انوال باشیم میتونه یه شب همه رو پس بگیر حرفی نزنیم که دل یکی به خدا قهرش بگیره و یه شب ما رو از این همه مال و منال بی نصیب روزن باشه دیگه به بلغز حرفی نمیزنم ولی هیدر تو هنوز به یه سوال من جواب نداریم کدوم سوال اینکه اینکه اون روز اون ملخ تلایی رو چطور به دست آوردی از کجا پیداش کردی؟ یه رازه یعنی چیه رازه؟ من زنتم من باید بدونم اون ملخ تلایی رو چطور به دست آوردی باید بدونم اون کی بود که با محبتش زندگی ما رو از این رو به اون رو من به اونی که این ملخ رو به امداده قول دادم ایتفاق این راز رو به کسی نگم که سال هاست از اون روز میگذره نمیتونم به خودم اجازه بدم این راز به تو یا هر کسی دیگه, دیگه با, با باشه, باشه نگو اما هر کی بوده دستش در نکنه اگه اون نبود خدا میدونه ما الان تو چه وضعیتی بودیم من حالا صاحبهکتار ها زمینم صاحب بزرگتا این آره. گله های هم. آره آره. تو از قبل پرورش مرغ و خروس و فروش تووق تونستی یه کسب و کار خوب بر خودت در سف کنی آره. و هر روز درآمد خوبی به دست. الا فکر کنم وقتش رسیده یه کار مهم انجام بدم چه کاری؟ فعلا نمیتونم به تو چه کاری ولی به زودی میفهم که ظرف چند سال تونسته بود با فروش اون ملخ طلایی مال و منال خوبی به هم بزنه تصمیم گرفت پیش همون زرگری بره که ملخ رو بهش فروخته بود تا پول ملخ رو بهش بده و ملخو ازش بخره به همین دلیلم هم به شهر رفت و اونو از زرگر خرید و به خونه برگشت وای یادت ای این همون ملخه همون ملخه تلایی وای چه قشنگه همون ملخ از از کی گرفتیش من اینو از کسی نگرفتم رفتم شهر از همون زرگری که ملخو بهش فروخته بودم خریدم وای یعنی ما اینقدر پول داریم که میتونیم ملخ طلایی بخریم بدون که ذره ای از مالام مالمون کم بشه لطف خدا عامل حال ما شده خب خب آلا میخواییم با این ملخ چی کار میخوام اونو ببرم بدم به صاحب اصلی تو که به من نمیگی صاحب اصلی این ملخ کیه. هر وقت ازت پرسدم گفتی یه رازه. آره نمیگم چون ازم قول گرفت نگم حالا که رفتم پیشش ازش میپرسم آیا میتونم این رازو به تو بگم یا نه باشی فقط وقتی رفتی پیشش از طرف منم ازش تشکر کن بگو خدا خیرت بده که انقدر با سخوت یا زندگی ما رو سر سامون <تصفيق> دوی اون روز حیدر ملخ تلایی رو برداشت و از خونه بیرون رفت به بازار که رسید قدری میوه و خوراکی خرید و پیش امو خیرخواه رفت که حالا پیرمردی نحیف و زمینگیر شده بود خب خوش اومدی حیدر جان خیلی وقته که سراغی از ما نگرفتیم هم هم. زندگی و روزگار به مجال نداز سریع بهتون بزنم شنیدم کسب و کارت رو رق گرفته نه لطف شما زندگیم سامون گرفتم مال و منالم زیاد شد و درمد خوبی داریم هم خودم هم زنم هم بچه هم خب خدا رو شکر اینم از مهربون خودت همون که خدا این لطف رو میت هم لطف خدا هم لطف شما همون و این وقت محبتیه که در حقم کردین از یاد نمیبرم شما در حق من پدری کردی نمو خیخا این حرف و نظر در خدا به هر کی به قدر دلش رزق و روزی میده ببینم <تصفيق> رو حیدر حالا چی شد بعد این همه سال به دیدنم اومدی؟ اومدم رو بهتون پس بدم امانتی؟ هم. کدوم امانتی؟ ملخ تلاییو بابا من اونو به که ندادم بال خودت بوده <تصال> نه اما خدا رو شکمه همه سر و سامون گرفتم از مال به دنیا بیبره نیستم دیگه نیازی به این ملخ ندارم گفتم بیارمشو اونو به خودتون پس بدم ها <تصال> <تصال> <تصال> میبینی میبینی اما چقدر دلت شاید هر کسی دیگه جای تو بود اصلا یادش میرفت این همه مال از کجا بوده؟ شادم هیچ وقت از این ملخو به صاحبش نمی میدن تو این همه سال همش به امروز فکر میکردم همون به روزی که این ملخو بیارم و بهتون تعبیل بدن میدم خیخا اینم ملخ تلایی دست درد نکنه هیدن <تصفيق> <تصفيق> چی شدم اون؟ آرومش آرومش بابا ب... ب... ولی آخه این ملخ زنده شدی ای این ملخ تلایی بود آه ولی آره, آره حالا جون گرفته باید هم چون میجه اینو گفتم بهتون برگردونم که شما به زندگیتون یه سر و سامونی بدین او؟ بابا اون روزی که تو دست تنگ بودی خدای ملخو به یه ملخ طلایی تبدیل کرد تا بلکه بتونی با فروش شرمایهی به دست بیاری و کار بکنی امروز که به لطف خدا ثروتمند شدی و حالا بینیازی این ملخ هم برمیارده به طبیعت همون جایی که باد باشه من باورم نمیشم هیچکی از کارای خدا سر در نمیارم؟ ما کجا بود؟ درک حکمت لایزال خدا کجا اما چونم تو این همه سال من به زنم نگفتم این ملخو کی برداد چون شما ازم خواستین که این رازو به کسی نگیم آره آره یه آدم الان که ملخو بهتون برگردنده میتونم این رازو به زنم بگم آره آره بگو بگو بگو تا زندم ایمانش به خدا کم بود مکم میشه <تصفيق> هیدر بعد از اینکه ساعت ساعتها با امو خیرخوا حرف زد به خونه برگشت در راه مدام به اتفاقی که افتاده بود فکر میکرد و به حکمت خدا که درکش برای ما انسانها ممکن نیست هیدر در همون حال به خونه رسید هیدر! هیدر چرا تو حیات نشستی؟ برو تو خونه؟ نه همینجا خوبه اه. اینقدر تو فکری؟ اتفاقی افتاده؟ نه نه یعنی آمده. آره خب چی شده؟ رفتم ملخ تلاییه رو به صاحبش پس دادم خب اینو که خودم هم میدونستم وقتی ملخ رو دادم به اون شخص ملخ یه او زنده شده رفت چی؟ هم. یعنی چی زنده شد؟ یعنی این که اون ملخ دیگه طلا نیست یه ملخ معمولیه جلل خاله چطور چنین چیزی ممکنه ایدن از اون موقع تالا ما تو مبهوتم که چطور همچه چیزی ممکنه ببینم از اونی که ملخو به داده بود پرسیدی که میتونی این رازه به منم بگی یا نه پرسیدم خب گفت بگو تا زنتم ایمانش به خدا بیشترش خب اون کی بود همون خیر خواه اونی که ملخ خوبه داده بود همون خیر خواه اخ اخ باید حدس میزدم که کار اون باید باشه <تصفيق> کی که به اون بخشن دست و کار خیر انجام میده دستش درد نکنه دوستان از اون روز به بعد حیدر و خونووادهاش روزگاه رو به خوبی پشت سر سرگذاشتن و از مال و منالشون در راه خدا امفاق میکردن. خب، این هم از افسانه ملخ طلایی که یک افسانه ایرانیه و درسی از سخابت و بخشندگی و دستگیری از دیگران داره. ملخ تلای تنظیم برای رادیو از سهیلا خدادادی راوی شاهین نجف زاده بازیگران مهرداد اشقیان محمد یگانه فریبا متخصص محمد رضا قلمبر. ایوب آقاخانی نازنین مهیمانی کارگردان بهرام سروری نژاد افکتور نازنین حساتی صدابردار مجید آینه تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانه دیگر بترو